اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب ل ناس حسابهم وهم في حساب مردم به آنها نزدیک شده است در حالی که آنها در غفلت روی گردانند ما یاتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون هیچ پند تازه ای از جانب پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر آنکه بازی کنان به آن گوش می دهند لاهیتم قلوبهم و اسرن نجوالذین ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتعتون السحر وأنتم تبصرون در حالی که دلهایشان قافل و در لحف سرگرم است و کسانی که کس ستمکار بودند پنهانی نجبا کردند و گفتند آیا جز این است که او بشری مانند شماست آیا به جادو روی می در حالی که حقیقت را می بینید قال ربی يعلم القول في السماء والارض و السميع العليم بر گفت پروردگارم هر سخنی را که در آسمان و زمین باشد میداند و او شنوای داناست بل قالوا اضغاس احلام بل افتراه بل هو شاعر فل یأتنا بی آیت کما ارسل الاولون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 پس اهل لکر کو tumلت به ای پیامبر پیش از تو جز مردانی را که به آنها می کردیم نفرستادیم پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل کتاب بپرسید و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما كانوا خالدین و ما آنها را که غذا نخورند قرار ندادیم و در دنیا جاوید هم نبودند ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکن المصرفین سپس وعد ای را که به آنها داده بودیم راست گردانیدیم پس آنها و هر کرا که خواستیم نجات دادیم و مصرفان را هلاک کردیم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 ووك قصنا منقرت كانت ظالمة شأنا بعدها قوماً اخریم چه بسیار شهرهایی را که ساکنانش ستم بودند در هم شکستیم و بعد از آنهاها قوم دیگری را پدید آوردیم فلم. احسوا بأسنا اذا هم منها پس چون عذاب ما را احساس کردند ناگهان آنها از آنجا می گریختند لا ترکضوا و ارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم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 ما آسمان و زمین با آنچه را که در میان آن دو به بازیچه چه نیافریدیم لو نتخذ اگر می‌خواستیم که سرگرمی بگیریم همانا آن را از نزد خودمان برمی‌گرفتیم اگر چون این کاری می کردین. بل نقدف بالحق علی الباطل فیدمره فاذا هو زاهق و لكم الوین مما تصفون بلکه ما حق را بر باطل می افکنیم پس آن را در هم می شکند و ناگهان آن باطل نابود می شود و وای بر شما از آنچه توصیف میکنید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 از آنچه آنها توصیف می‌کنند لا یسأل عما یفعلون وهم او از آنچه می کند باز نمی شود و با آنان باز خواست میشوند ام اتخذو من دونه الهات قل ها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 لذا آنها از آن روی گردانند و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه انه لا اله إلا انا فاعله و ما پیش از تو هیچ پیاپی بر اینا نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست پس تنها مرا عبادت کنید و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. و گفتند خداوند رحمان فرزندی برگزیده است او منزه است بلکه آنان بندگان گرامی او هستند لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می کنند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 و آنها از ترس او بیمناکند و من منهم انني اله من دونه فذالك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين و هرکس از آنها بگوید همانا من به جای او معبود هستم پس سزای چنین کسی را جهنم میدهیم بسه کاران را این گونه سزا می‌دهیم اولاً يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطعناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون ايا کسانی كه کافر شده اند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 و در زمین کوه های استوار قرار دادیم که مبادا آنها را بلرزاند و در آن راهی گشاده قرار دادیم باشد که آنان راه یابند و جعلنا السماء سقفاً محفوظا وهم عن اياتها معرضون و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم وأنها از آیات آن روی گردانند و هو الذی خلق الليل و النهار والشمس و القمر کل فی فلك یسبحون و او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید هر یک در مداری شناورند و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد <تصفيق> و پیش از تو ای پیامبر برای هیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم آیا اگر تو بمیری پس آنها جاوید خواهند بود کل <تصفيق> نفس و نبلوکم بشر و الخیر فتنتا و ترجعون هر کسی چشنده است و شما را به بدی و نیکی آزبایش می کنیم و به سوی ما بازگردانده می شوید. و اذا راک الذين كفروئي يتخذونك إلا هزواً الذي يذكر آله وهم بذكر الرحمنهم كافرون و كافر شدند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 لَوْ الذين الَّذِينَ لا يكفون عوجوهم النار ولا عظورهم لویعلم الذين كفروحين لا يكفون عوجوهم النار ولا اگر کسانی که کافر شدند میدانستند زمانی که قیامت فرارست نمی توانند شله آتش را از چهرههایشان و نه از پشتهایشان باز دارند و نه کسی آنها را یاری می کند چون این نمی گفتند. بل تأتیهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم منضرون بلکه حق این است که آن ناگهانی به سراغشان می آید پس مبهوتشان می کند آنگاه نمیتوانند آن را دفع کنند و نه به آنها مهلت داده شود و قادی توفزی ابیصولیم من فَحَاقَ که ف مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ مکنبی و به راستی به پیام بران پیش از تو نیز استحضا شد پس آنچه را مسخری میکردند از عذاب الهی دامان کسانی از آنها را که مسخره میکردند گرفت و هلاک شدند.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 که میتوانند آنها را در برابر عذاب ما حفظ کنند و باز دارند آنها نمیتوانند خودشان را یاری دهند و نه آنها از عذاب ما محفوظ هستند بل متعناها اولائی و حتی طال عليهم العمر افلا بلکه ما آنها و پدرانشان را از نعمتهای دنیاوی بحرمند ساختیم تا اینکه عمرشان به درازا کشید و مقرور شدند آیا نمی بینند که ما پیوسته به سراغ سرزمین کفر می آییم؟ که آن را از اطراف و دامنهایش میکاهم آیا آنها پیروزند یا ما قل انما انذركم بالوحد ولا يسمع الصم الدعاء الى ما ای پیامبر بگو من تنها شما را به بعه هشدار میدهم و کران هنگامی که هشدار میشوند نداران میشنوند و لئیم مستهم نفحتم من عذاب ربک لیاقولن یا ویلنا لیاقولن کننا ظالمین اگر شمعی از عذاب پروردگارت به آنها برسد قطعا خواهند گفت ای وای بر بی ما بیگمان ما همه گیس همکار بودیم و نضع الموازین القسط ليوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و این که من قال حبتیم من خدلن تاب ووك فابنا حسیبی و ما در روز قیامت تازوهای ل را مینیم پس به هیچ کس هیچ ستمی نمی شود و اگر عملی به مقدار سنگینی یک داانی خردل باشد، آن را به حساب می آوریم و حساب رسی ما کافی است و لقد آتینا موسا و هارون الفرقان و و و به راستی به موسی و هارون فرقان و روشنی و پندی برای پرهیزگاران دادیم الَّذِينَ يخشون رَبَّهُمْ بالغيب وهم کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسند و آنان از قیامت بین دارند فَهَٰذَا ذِكْرٌ و این قرآن پنده مبارکی است که آن را نازل کردیم آیا شما آن را انکار می‌کنید ولقد آتینا ابراهیم رشدَهُ من قبل و به عالمین ما پیش از این به ابراهیم رشد را دادیم و به حال او آگاه بودیم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 گفتند ما پدران خود را پرستش کنندگان آنها یافته ایم قال لقد کنتم انتم و آباؤکم في ضلال مبین ابراهیم گفت به راستی شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید قالوا بالحق من گفتند آیا برای ما سخن حق را آورده ای یا تو از بازی کنندگانی قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلكم من الشاهدين گفت بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است، آنکه آنها را پدید آورد و من بر این سخن از گواهانم و تالله لأکیدن بعد ان تولو مدبرین به آهست گفت به خدا سوگند بعد از آنکه پشت کنان روی بگردانید. برای نابودی بت‌های شما تدبیری خواهم اندیشید فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون پس ترقیاب بت پرستان همه آنها جز بت بزرگشان را قطعه قطعه کرد باشد که به سوی او بازگردند قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. و هنگامی که به بت آمدند و دیدند گفتند هر کسی که با خدایان ما چالش کرده است مسلما او از ستمکاران است قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال لهم ابراهيم ادئي گفتند شنیدیم جوانی که او را ابراهیم میگویند بتها را به بدی یاد میکرد قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید باشد که آنها گواهی دهند قالو انت فعلت هذا یا ابراهیم هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند گفتند ای ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما کرده ای؟ قال بل فعله كبرهم هذا فاسالهم ان كانوا ينطقون قلت این بزرگشان این کار را کرده است پس از آنها بپرسید اگر سخن میگویند فرجعوا فقالو انكم انتم الظالمون انگاه آنها به خود باز گشتند پس گفتند بی گمان شما خود ستمکار هستید ثم منکسو علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلائیم. سپس سر به زیر انداختند و گفتند مسلما تو میدانی که اینها سخن نمیگویند قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ابراهیم گفت آیا به جای الله چیزی را میپرستید که هیچ نفعی برای شما ندارد و نزیانی به شما میرساند أُفِّلَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ اف بر شما و بر آنچه بجای الله میپرستید آیان میاندیشید. قالوا حرقه و انصرؤ گفتند او را به سوزانید و معبودان خود را یاری کنید اگر کننده کاری هستید. قلنا یا نار بردم و سلاما علی ابراهیم سرانجام آنها او را به آتش انداختند ولی ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. و آرادو بهی فجعلناهم فجعلنا و آنها خواستند برای نابودی او نیرانگ ورزند. پس آنها را زیان کارترین مردم قرار دادیم. و نجینا هو إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. و او ولوت را به سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت داده ایم، نجات دادیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و جعلنا صالحیم و اسحاق و افزون بر او نوه عشی را به او بخشیدیم و همه آنها را شایسته قرار دادیم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 ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوط را حكمت و دانش داديم و او را از شهری که مردمانش اعمال زشت و پلید انجام میدادند نجات دادیم بیشک آنها مردم بد فاسقی بودند و ادخلناه فی رحمتنا اینه من الصالحین و او را در رحمت خود داخل کردیم بیگمان او از صالحان بود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 و نصرناهم من القوم الذین كذبوا بی انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعین و او را بر قومی که آیات ما را تقذیب کرده بودند یاری دادیم بیگمان آنها قوم بدی بودند پس همه آنها را غرق کردیم و داوود و سلیمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدین و داوود و سلیمان را بیاد آور هنگامی که در کش زاری که گوسفندان قوم شبان در آن چریده بودند داوری میکردند و ما بر حکم آنها شاهد بودیم و فهمناها سلیمان و کلا اتینا حکم و علما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر و کننا فاعلین پس آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان حکمت و دانش عطا کردیم و ها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح می گفتند و ما این همه را انجام دادیم وعلمناه علمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من بأسکم فهل انتم شاکرون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 و کنا لهم حافظین و از شیاطین کسانی را مسخر کردیم که برایش غواسی میکردند و کارهایی غیر از این نیز انجام میدادند و ما حافظ آنها بودیم و ایوب اذناد ربه انی مستنی الضر و انت ارحم الراحمین بهی پیامبر عیوب را به یادآور هنگامی که پروردگارش را نداداد رنج و بیماری به من رسیده است و تو مهربانترین مهربانانی له مَا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ معهم أَهْلَهُ معهم رحمة من عندنا للعابدين پس ما دعای او را اجابت کردیم و رنج و ناراحتی که داشت برطرف ساختیم و خانوادهاش اش و نیز همانندشان را با آنها به او باز تا رحمتی از جانب ما و پندی برای عبادت کنندگان باشد و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین و اسماعیل و ادریس و ذلکفل را بیاد آور که همگی از صابران بودند و ادخلناهم فی رحمتنا این من الصالحين. و ما آنها را در رحمت خود وارد کردیم بیگمان آنها از صالحان بودند و ذنون ذهب مغاضبا فظن ان لن قدر عليه فنادا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 در تاریکی ها نداداد که خداوند هیچ معبودی جز تو نیست تو منزهی بیگمان من از ستم کاران بودم فاستجبنا له ونجیناه من الغم و ننجی پس تو آیه او را اجابت کردیم و از اندوه نجاتش دادیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم و زکریه اید نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین و زکریه را بیاداور هنگامی که پروردگارش را نداداد پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین بارسانی فاستجبنا له و له یحیا و له زوجا اینهم کانو یسارعون فی الخیرات و رغبا و و لنا خاشعين. پس تو را اجابت کردیم و یحیا را به او بخشیدیم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 والتی احصنت فرجها فنفحنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین به ای پیامبر به یاد آور زنی را که شرمگاهش را پاک نگاه داشت پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او و فرزندش را نشانهای برای جهانیان قرار دادیم این نه هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون بیتردید این است آیین شما که آیین یگانه است و من پروردگار شما هستم پس مرا پرستش کنید وتن ق با امررامون بین اون كلون و گروهی از پیروان انبی در میان خود در امر فرق فرقه شدند همگی به سوی ما باز میکردند و من الصالحات و هو مؤمن فلا كفران و پس کسی که از کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد کوشش او سپاسی نخواهد شد و بیگمان ما اعمالش را برایش می نویسیم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 حتی اذا فتحت یعجوج و وهم و من كل حدب ینسلون تا بقتی که صد یعجوج و معجوج گشود شود و آنها از هر تپه و بلندی شتابان سرا زیر گردند وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَوُواْ يَوِيلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ و حق نزدیک شود پس در آن هنگام های کسانی که کافر شدند از وحشت خیره ماند گویند ای وای بر ما از این واقعه در غفلت بودیم بلکه ما کار بودیم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون یقینا شما و آنچه به جای خدا می پرستید هیزم جهنم هستید شما در آن وارد خواهید شد لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل اگر اینها معبودانی برحق بودند هرگز وارد آن نمیشدند و آنها همگی در آن جاودان خواهند ماند لهم فيها ذخير وهم فيها لا يسمعون برای آنها در آن ناله‌های دردناکی است و آنها در آن چیزی نمی‌شنوند ان الذين سبق لهم من الحسناء اولىك عنها مبعدون.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 و در آنچه دلشان بخواهد جاودانه هستند لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم هذا كنتم بزرگ قیامت آنها را اندوهکی نسازد و فرشتگان به استقبالشان آیند گویند این همان روزتان است که به شما بعد داده میشد یومَن طَوَى السَّمَاءَ طَيَّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعيده علينا انا فاعلين. روزی که آسمان را چون تو ماری نوشته شده در هم پیچیم همان گونه که نخستین آفرینش را آغاز کردیم دیگر بار آن را باز میگردانیم. این وعدهای ای بر ماست قطعاً آن را انجام خواهیم داد و لقد فی الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادی الصالحون و به راستی بعد از ذکر در زبور نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد این نه فی هذا لبلاغ لقوم عابدین بیگمان در این امر برای گروه عبادت کنندگان پیام روشنی است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیام بر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 پس آیا شما تسلیم میشوید فاین تولو فقل اذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ان بعید ما توعدون پس اگر باز روی گردان شوند بگو من شما را یکسان آگاه کردم و نمی دانم آنچه که به شما وعده داده می شود نزدیک است یا دور اینهُ بیشک او سخن آشکار را میداند و نیز آنچه را در دل خود کتمان میکنید میداند و, لكم و, الى حين. و من نمیدانم شاید این تأخیر عذاب برای شما آزمایشی و بهرمندی تا مدتی معین باشد قال رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون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 الناس ربكم این زلزلت ای مردم، از پروردگارتان بترسید، بدون شک زلزله قیامت حادثه‌ای عظیمی است. يَوْمَ ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل, حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد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 و من الناس من يجادل فی الله بغیر علم ویتبع كل شیطان مرید و بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی باری خداوند به مجادله برمیخیزند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر در قضای الهی بر او نوشته شده که هر کس با او دوستی کند مسلما او گمراهش می و او را به عذاب آتش سوزان جهنم میکشاند یا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْذَ لِلْعُمُرِ لكي لا, يعلم لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وترى تر الأرض هامدا فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج أي مردم اگر از برانگیخت شدن در شک حستید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 سپس تا به حد رشد خود برسید و از شما کسی هست که می میرد و از شما کسی هست که به نهایت فرطودی باز برده می شود تا آنکه پس از علم و دانش چیزی نداند و زمین را خشکیده میبینی پس هنگامی که آب باران بر آن فرو فرستیم به حرکت در میآید و رشد کند و از هر نوع گیاه زیبا و خرم برویاند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 و ان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور و آنکه قیامت آمدنی است شکی در آن نیست و آنکه خداوند همه کسانی که در گورها هستند برمیانگیزد انگیزد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير از مردم کسی است که بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی درباره خدا مجادله میکند. ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزیو ونذیقه يوم القیامة عذاب الحریق تكبر كنان پهلو و گردن خود را میپیچد تا مردم را از راه خدا گمراه سازد برای او در دنیا است و روز قیامت آتش سوزان را به او میچشانیم و بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. و به او گوییم این کیفر در برابر چیزی است که دست از پیش فرستاده است و بیگمان خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند.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 و از میان مردم کسی است که خدا را بر کنار با تردید می پرستد و ایمانش بسیار ضعیف و سست است. پس اگر خیری به او برسد دلش به آن آرام می گیرد و اگر بلایی برای آزمایش به او برسد روی میگرداند و به کفر باز می گردد. در دنیا و آخرت زیان کرده است. این همان زیان آشکار است. یدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد وبجای خدا چیزی را میخواند که نه زیانی به او میرساند و نه سودی به او میبخشد این همان گمراهی دور است يدعوا لمن ضره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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد بيغمن خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام داده باغ هایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان است. آن است مسلما خداوند آنچه را می خواهد انجام می دهد من کان یظن ان ان ینصره الله فی الدنیا والاخره فلیمدد بسبب الى السماء ثم یقطع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 اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, والشمس والقمر وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وكثير حق علیه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیا ندیدی كه هركس در آسمانها و هركس كه در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان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 لباس‌های از آتش برای آنها بریده شده است از بالای سرشان آب سوزان ریخته می شود به ما في والجلود. که آنچه در درونشان است و نیز پوست با آن گداخته می شود و لهم مقامع من حدید و برای زدن آنها گرزهایی از آهن داغ است کلما ارادو این یخرجو منها من غم اعیدو فیها اعیدو فیها عذاب الحریق هرگاه بخواهند از شدت اندوه از آنجا خارج شوند به آن باز بازگردانده میشوند و به آنها گفته می شود عذاب سوزان جهنم را بچشید این الله يدخل الذين و وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها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 در آنجا به دستبند های از طلا و مروارید آراسته می و لباسشان در آنجا ابریشم است و الى الطیب من القول و الى صراط و به سوی گفتار پاکیزه هدایت میشوند و به راه خداوند ستوده راه نمائی می می‌گردند این الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لنا و الحرام الذي جعلناه للناس سواء ان العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظل من نذقه من عذاب أليم. بیگمان کسانی که کافر شدند.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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحْهِرْ بَيْتِي وَطَحْهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أبي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 زقوب و تفسه همیوفون وذوررا هم بافو باللب سپس باید آلودگی را برطرف سازند و به ننظرهای خود وفا کنند و بر گرد خانی کوهن سال کعب تواف کنند.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 لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تهوي به الريح في مكان و مخلص خدا و شریک نیاورندگان به او باشید و کسی که به خدا شرک آورد پس گویی از آسمان سقوط کرده است آنگاه پرندگان گوشت خار او را می‌روباینند یا باد او را به جایی بسیار دور پرتاب میکند. ذالک و من یعظم شعائر الله فإن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 الى البيت در آن چهار پایان قربانی تا زمان معین برای شما منافع و بهرههاست، هاست پس قربانگاه آن خانه کوهنسال کبه است.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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون همان کسانی که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و شکی بایان در برابر مسیبتهایی که به آنها می رسد و آنها که نماز را برپا پا دارند و از آنچه روزیشان کرده این انفاق می کنند و البدن جعلناها لکم من شعائر الله لكم فيها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 این گونه ما آنها را برای شما رام کردیم باشد که شما سپاس گذاری کنید لا ی الله لحومها ولا دماءها ولیکن ناله التقوى منكم كذالك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين گوشت های قربانی و خونهای آنها هرگز به خدا نمیرسد، رسد ولی کن پرهیزگاری شما به او می رسد این خداوند آنها را برای شما مسخر کرده تا خداوند را به شکرانی آنکه شما را هدایت کرده است بزرگ بشمارید و نیکوکاران را بشارده ان الله يوداف عن الذي الله لا يحب كل خوان كفور. یقینا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند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 از آن رو که مورد ستم قرار گرفتهاند و یقینا خداوند بر یاری آنها تواناست الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا أن قولوا ربنا الله وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ان الله لقوی عزیز همان کسانی که به ناحق از دیارشان رانده شده جز اینکه میگفتند پروردگار ما الله هست و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفن میکرد بیگمان دیرهای راهبان و کلیساهای مسیحیان و کنشتهای یهودیان و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود ویران میگردید. و مسلما خداوند یاری می کند کسی که دین او را یاری دهد. بیگمان خداوند قوی پیروزمند است. <تصفيق> الذين کسانی که في الارض اقاموا الصلاة و امروا و امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله اگر در زمین به آنها قدرت و حکومت بخشیم نماز را برپا می دارند و زکات را می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها از آن خداست و این یکذبو کفقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ای <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <هی> پیامبر اگر این قوم بودپرست تو را تکذیب می کنند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 فكيف كان نكیر؟ و اصحاب مدین و موسا نیز شد پس به کافران مهلت دادم آنگاه آنها را فرو گرفتم پس بنگر این انکار و عقوبت من چگونه بود فکا من قریت اهلکناها و هی ظالمت فهی خاویة علی عروشها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 و چه قرهای برافراشته استوار که بی صاحب مانده است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 ولی که که در سینه هاست نابینا میشود شود و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده و این یوما عند ربک کالف الف مما تعدون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 قارویتین لها وهي ثم اخذتها ثم اخذتها و ثم چه بسیار آبادیها ها که به آنها مهلت دادم در حالی که مردمش ستمگر بودند آنگاه آنها را گرفتم و بازگشت همه به سوی من است.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 فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم پس کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها آمرزش و روزی نیک است والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم و کسانی که مبارزه کنان در انکار آیات ما تلاش کرده و پنداشتن که ما را به سطوح میآورند آنان اهل دوزخ هستند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 فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحكم الله آیاته والله علیم حكیم و ما هیچ رسول و انبری را نیش از تو نفرستادیم مگر اینکه چون آیات ما را تلاوت میکرد شیطان در تلاوت او چیزی القا میکرد آنگاه خدا آنچه شیطان القا می کند از میان میبرد. سپس خداوند آیاتش را استوار و محکم میدارد. و خداوند دانای حکیم است لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین في قلوبهم مرض و قلوبهم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 انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبط له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم بتا کسانی که به آن دانش داده شده بدانند که مسلما آن قران از سوی پروردگارت حق است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 حتی تأتیهم الساعت بغتتا او یأتیهم عذاب یوم عقیم و کسانی که کافر شدند همواره در آن شک دارند تا آنکه ناگهان قیامت فرار سد یا عذاب روز نحس بر آنها فرو داید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 در باقهای پر نعمت هستند والذین كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآیاتنا آیَاتِنَا لهم عذاب مهین و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تقزیب کردند برای آنها عذاب خار کننده ایست وَالَذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أُمَّتُهُ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ و کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند، یا مردند، مسلما خداوند به آنها روزی نیکویی می‌دهد. یقینا خداوند بهترین روزی دهندگان است. هم الله حلیم بدون شک آنها را به جایگاهی وارد می که از آن خوشنود باشند و بیگمان خداوند دانای بردبار است ذلک و من عاقب بمثل ما عوقب بهی ثم بغی علیه لینصرنه الله ان الله لعفون غفور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 و انما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير این به خاطر آن است که خداوند حق است و آن چه جز او به خدایی میخوانند باطل است و به راستی که خداوند بلند مرتبه بزرگ است ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح <تصفيق> الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد سپس زمین بر اثر آن سبز و خرم می‌گردد بیگمان خداوند پاوریک بین آگاه است له ما فی السماوات و ما فی الارض و الله له الغن الحمین آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و بدون شک خداوند بینیاز و ستوده است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 ووقو الذي احياكمثم میی تکمثم يحيِ النسانل کفوب و اوست که شما را زنده کرد سپس می و آنگاه بار دیگر زنده میکند به راستی که انسان بسیار ناسپاس است. لكل أمت جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقیم برای هر أمتی آیینی مقرر كردیم كه آنها بدان عمل میكنند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 الله يحكم بينكم يوم القیامة فیما كنتم فيه تختلفون الله روز قیامت بین شما در مورد آنچه در آن اختلاف می کردید داوری میكند ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض این فی کتاب این ن ذلكیک الله آیا ندانسته ای که الله آنچه در آسمان و زمین است میداند؟ بیگمان همه اینها در کتابی ثبت است مسلما این کار بر الله آسان است. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما من نصیر و آنان به جای الله چیزی را می پرستند که او هیچ دلیلی بران نازل نکرده است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 يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 و این یسل به هم لا یستنقضوه منه ضعف الطالب والمطلوب ای مردم مسلی زده شده است پس به آن گوش فرا دهید بیگمان کسانی را که به جای الله میخوانید هرگز نمیتوانند مگسی را بیافرینند اگر چه همگی برای این کار گرد آیند و اگر مگس چیزی از آنها برو باید نمی توانند از آن باز پس گیرند آری طالب و مطلوب ناتوانند ما قدر الله حق قدره این الله لقوی عزیز آنها خداوند را چنان که سزاوار اوست نشناختند یقینا خداوند قوی پیروزمند است. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. ان الله سمیع بصير. خداوند از فرشتگان رسولانی را برمیگزیند و, و نیز از مردم بیگمان خداوند شنوای بین یعلم اعلم ما بین ایدهیم و ما خلفهم و ایلله آنچه را در پیش روی آنها و آنچه پشت سر آنهاست میداند و همه کارها به سوی خدا بازگردانده بیشاد. يا أيها الذين آمنوا كع واسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، رکو و سجده کنید و, سجد و پروردگارتان را به و كار نیک انجام دهید. باشد که راستگار شوید. و جاهد فی الله حق جهاده هو جتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملت أبيكم إبراهيم. ها سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا